خب بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف والليلة القدر باب اعتكاف و شبه قدر الاعتكاف سنة اعتكاف سنة ولا يلزم الا بالنظر ولا زمي نميشه مگر با نظر کردن ولا يجوز الا في مسجد ينوي بلبثه فيه الاعتكاف وجائز نيست مگر در مسجدی که نیت کند با ماندنش در آن را بصوم وغير صوم وفي قليل الزمان وكثيره وفي الليل دون النهار وجائز است اعتكاف با روزه وبدون روزه في بعض الاسفقه ميگن كبدون روزه درست نس وجائز در زمان كم ودر زمان زياد مثلا ميگه در 1 ساعه رفته مسجد هلا اونجا نيهت اعتکاف كنه اين هم ميگه جائزه وفي الليل دون النهار وجائز است و جائز است اتکاف در شب به غیر از روز یعنی فقط بیاد نیت بکنه که شب کار کنه ها اتکاف بکنه منظورش این نیست که و اتکاف فقط در شب جائزه در روز جائز نیست بلکه منظور اینه که و جائز است فی لیل دون النهار یعنی جائز است که اتکاف می بین در شب بدون روز ولا یخرج منه الا اذا كان ناظرا متتابعا و خارج نمیشه از اعتکاف زمانی که اعتکافش نظری پی در پی بود یه یعنی نظر کرده بود که پی در پی با چکار کنه جائز نیست الا مگر استثناء آورده لحاجت الانسانی برای حاجت های انسانی من اکل او شرب او قائط و بول و محذرت او من خوف و مراد حاجت های انسانی همچون خوردن، نوشیدن، مدفوع و شاش و یا بحث پرهیز از مریزی و ترس. ولو اعتکاف فی غیر الجامع فخرجه ایل الجمعه بطل اعتکافو. اگر اعتکاف نشست در مسجد غیر جامع در مسجد غیر جمعه پس خارج شد برای جمعه میگه اعتکافش باطل میشه. این خاطر است که میگن در مسجد چی باشه؟ اصلا بعضی اومدند. اتفاق جز در مسجد جای دیگه جایز؟ نمیتونند. ولی قول اینا از قرآن هست و انتوم عاقفونه فله مساجده. فرمود لغه وارده. چی میگه این قول جمهوری اینی که میگن در بقیه مساجد جایز. و این قول این قول با احداف شریعت نزدیکتر میدونی چرا؟ خب بابا دنیا که مسلمان ها پراکنده هستند اگر ما بیایم اینو مخصوص سمسید بکنیم باقیه چی میشن؟ از این عبادت بزرگ چی میشن؟ محروم میشن حالا که اعتکاف برای اینه که انسان وقت به چیز دیگه نده فقط به چی بده؟ به عبادت بده به چی بده؟ به عبادت بده لذا قول جمهور فقها ها قوی تر در این مورد خلاصه و کذلک لو خرج لعیادتی مریزن او تشیه چن و همچنین باطل میشه اگر خارج شد برای عیادت مریض یا برای تشییع جنازه الا مگر ان تا هو فی نظرهی مگر در زمانی که نظر کرده شرط بگذاره که اگر جنازه پیش اومد من بیرم یا عیادت مریضی فلا یا بطلو در این حالت پس باطل نمیشه اتکاف یعنی اگر شرط گذاشته بود باطل نمیشه به خروجی با خارج شدنش نشه از مسجد و من اخرجه السلطان و عادف بنا و هر که خارج کرد اونو سلطان برگشت پس ادامه میده دیگه از سر اعتقافش رو شروع شروع تو در فقه منحجی آورده اگر سلطان اونو به حق از مسجد خارج کرد که باطل میشه ولی اگه به ناحق اونو خارج کرد و بعدا دوباره برگشت اینجا دیگه ادامهش میده بنامی کنه و لا باشر و آمیزش نمیکنه. و فا ان باشره فیل فارجی باطل اگر مباشرت کرد در فرج آمیزش کرد در فرج اتکافش باطل میشه پس مباشرت نمیکنه کنه بازن اگر در آمیزش کرد در فرج اون موقع اتکافش باطل میشه و این باشر دولهو باطل این, او این انزل اگر مباشره کرد در بغیر از فرج به شرطی باطل میشه اتکافش که معنی خارج میشه. اما منی خارج نشد باطل نمیشه و لمیاب طول اللم یون زل و باطل نمیشه اگر منیش خارج نشد و در پاورغی میاره باطل میشه اتکاف با خارج شدن از به غیر نیازه ضروری امدی اگر چه که هم خروج کم باشه همانطور که باطل میشه اتکاف اتکاف زن با, با حیز و با نفاس و همچنین باطل میشه با وقت که همون. إنه توزيدات، ولا تباشروننا وأنتم معكفون في المساجد، آه، دا قرآن دار القرآن وما ذيك مباشرة لن يكونوا إذبازنا درالكه، در إنت كافيت، وليلة القدر باقية مع الدهر كله، شبقة هميشه حميشة است، وهي في شهر رمضان في العشر في العشر الأواخر و ودار ماه رمضان است، در دهيه أخيرة رمضان. والرواية و روایتو انها في لیلت 21 و روایتو که در شب بیست و یکم معثوره هست در اثر و یعنی این البته اکثر فقه ها در پاوریقی آورده که بیست هست چون روایت بیست دیگه سند صحیح هم داره احنا هم همینو میگن احناف هم همین بیستو هفتمو میگن و این انتقلت فهی فی افراد العشری اوجدو میگه اگر منتقل هم باشه یعنی منظور یک شبش ندونیم مثل بیسته هفتم یا بیستیوکم میگه در این صورت در شبه های فرد دهه اخیر اوجد وجودش بیشتر است اوجد اسم تفضیل و این انتقلت فهی فی افراد العشر در های تایه یعنی یکم م 12م 23 25م 27م 29م در شب‌های افراد این در شب‌های فرد و این جوازاً توجت فی اگرچه که جایز است در تمام رمضان هم موجود باشه یعنی شخص میتونه بیاد در کل این رمضان دنبالش بگرده و اذا اثرها وصلى الله تعالی العفو والعافيه و دعا بما سنح له من دین و دنیا و زمانی که دید آن را ها به لیلت القدر برمیگرد میگه اثر را ها پنهانش میکند و تلب میکند اینجا راه هم به معنی دیدن چشم نیست اون شب قدر میشه با چشم که دیگه نمی بینه نه یعنی اگر برین باور بود که مثلا با توجب علامت که ام شب که چیه؟ ام شبه. که ام شبه. یا مثلا شب دیگه هست میگه زمانی که اونو دید اونو می و دعا می کند از الله متعال عفو و آفیره و دعا بما سنح له من دین و دنیا و دعا می کند بران چکر رسانی است برای او از دین و از دنیا تا همین جا جزاك الله خیرن کتاب سامتمون شد انشالله کتاب حج